درود شنوندگان وفادار رادیو البورس اناوین خبری مربوط به پناهندگان در هفته که گذشته رو به سمع شما میرسانم در میان کشورهای که اتحادیه اروپا سوئد بیشترین تعداد کنترل های مرزی را انجام داده است اتحادیه اروپا در پی افشاچی شدید شماره پناهندگان به کشورهای سوئد، دانمارک، نروژ، آلمان و اتریش اجازه داد که کنترل مرزی داشته باشند با اجازه استثنایی است که چرا که در بین میان کشورهای عضو قرار قرارداد شنگن نباید کنترل مرزی وجود داشته باشد. این کشورها باید کمیسیون اتادی اروپا را در مورد کنترلی که انجام می دهند مطالعه بررسی براسیه های این کشورها به اتادی اروپا حاکی از آن است که در تابستان گذشته 3 میلیون و هزار کنترل مرزی به عمل آورده که برای نمونه 8 برابر تعداد کنترل هایی است که آلمان انجام داد است. انتقاد از طرح کنترل موبایل پناهجویان آلمان برای کشف هویت آنها. اغلب پناهجوانی که وارد آلمان می شوند مدارک شناسایی معتبر ندارند. برای تعیین هویت واقعی آنها وزیر کشور آلمان پیشنهاد کرد تا محتویات گوشی های همراهشان را بررسی کنند. پیشنهاد وزیر کشور آلمان برای کنترل محتوای گوشیهای موبایل پناهجویان بحث برانگیز شده است. توماس دمیزر طرحی پیشنهاد کرده که در صورت تصفیه بدام مهاجرت و پناهندگی آلمان اختیار داده میشود. برای شناسایی بهتر پناهجویانی که مدرک شناسایی همراه ندارند، اطلاعات داخل گوشی همراه و موبایلشان کنترل شود. نگرانی از ورود تروریست های تروریس ها به آلمان به عنوان پناهجو و انجام عملیات تروریستی یکی از انگیزه های تشخیص هویت پناهجویان است. پیشنهاد وزیر کشور آلمان حالا با مخالفت های از سوی اپوزیسیون و نهادهای طرفدار پناهندگی و نیز یکی از هم ها و همکاران او در کابینه ها روبرو شده. مسئول حفاظت از حریم خصوصی و گردش آزاد اطلاعات در دولت آلمان با انتقاد از پیشنویس قانون جدید گفت که شک دارد دستاندازی در چنین سطحی به حقوق اساسی افراد مطابق با قانون اساسی آلمان باشد اتهام فروش نوبت مصاحبه در سفارت سوئد بر اساس بررسی که بخش خبری رادیو سوید به همراه تلویزیون سوید انجام داد سفارت سوید در اردن متهم است که زمانهای مصاحبه را به برخی از متقاضیان میفروخته است نجوان پناچوی سوریز حدودا دو سال پیش به سوید آمده و در تلاش بود تا همسرش لبنا و فرزندش را به سوید بیاورد. بالاخره پس از مدتی تلاش لبنا به سفارت سوید در اردن مراجع می کند که مقدمات سفرش به سوئد فراهم شود کمی بعد او تلفنی از سفارت دواری دریافت می‌کند که او به او پیشنهاد می‌شود که در صورت پرداخت مبلغ زیادی می‌تواند زمان مصاحبهش مس... را جلو بیاندازد قیمتی که لبنا برا... بهش پیشنهاد شده هزار کرون سئود بوده است سفیر سئود همچنین از دریافت اطلاعات جدید دیگری مبنی بر فروش وقت مصاحبه خبر میدهد که هفته پیش به دستش رسیده با این همه میگوید که تحقیقاتی بیشتر انجام خواهد شد یه خبر دیگر باز از آلمان مرکل از سران اتحادی اروپا درخواست کرد که برای بحران مهاجرت رو حل مشترک بیاوند او پیش از مراسم تجلیل از سال روز پیمان روم بر تعهد همه کشورهای این اتحادیه برای مقابله با بحران مهاجرت تأکید کرد آنگرا مرکل صدراظم آلمان از رهبران کشورهای اروپایی خواست که تعهدات مشترک برای مقابل با بحران مهاجرت در اتحادی اروپا را در نظر گیرند مرکر که پیش از برگزاری شستمین سالگرد اجلاس معاهدات روم در ایتالیا سخن میگفت و دریافت راه حل مشترک در خصوص بحران مهاجرت تاکید کرد بکه افزود اروپا باید یک راه حل مشترک در این راه را در اولویت کارهایش قرار دهد. 60 سال پس از امضای پیمان روم توسط شش کشور عضو اتحادیه اروپا که بعدا جامعه اقتصادی اروپا و در فرجام اتحادیه کنونی را تشکیل داد، برخی از اعضای آن با بحرانهای مختلف از جمله اخراج بریتانیا از این جمع مواجه شدند. این نشست در حالی برگزار شود که 60 سال پیش از امروز نخستین سنگ بنای بنای اتحادیه اروپا گذاشته شد. بر اساس گزارش رسانه‌ها بر اثر غرق شدن یک قایق حامل مهاجرین در مقابل ساحل جنوبی ترکیه دستکم کم انسان جان باختند. با گرم شدن هوا عبور مهاجران دریا افزایش یافته و شمار تلفات نیز بالا میرود. خبرگزاری دوگان روز جمعه گزارش داد که این قایق حامل مجموعاً 22 انسان بود که در دریای اژه در ایالت آیدین واجه شد جسد 11 انسان که دریا به ساحل انتقال داده است و هفتن نجات داده شدهاند. چهارتن دیگر نیز هنوز مفقودن قایقهای باندهای قاچاقبر برای سفر دریایی مساعد نیستند و به همین دلیل همواره شمار بیشتر مهاجران در راه پرخطر دریایی به سوی اروپا جان میبازند توافقنامه مهاجرین که در مارچ 2016 میانه ترکیه و اتحادیه اروپا تایید شد، از جمله در نظر دارد که ترکیه از آمدن مهاجرین از کشورشان به سوی یونان جلوگیری کند و تمام مهاجران از جزایر یونانی را دوباره بپذیرند. این توافقنامه شامل این ماده است که این براساس اساس آن ترکیه مکلف است که از ایجاد راه های از طریق ترکیه به سوی اروپای غربی ممانع کند بر اساس گزارش کمیساریای عالی سازمان ملل در امور پرندگان، از سال 2014 به این سو بیش از ده هزار انسان از طریق دریای مدیترانه جان خود را از دست دادند. تنها در سال جاری میلادی شمار قهر شدگان بیش از دو هزار نفر بود است آنتونیو گوترش دبیر کل سازمان ملل متحد روز چهارشنبه از یک اردوگاه آوارگان سوری در اردن دیدن کرد و تأسیسات این سازمان و نهادهای زیر مجموعیان بازدید به عمل آورد. حدود 800 هزار شهروند سوری که از جنگ داخلی این کشور گریختن در اردوگاه زعتری که آقای گوترش از آن بازدید کرد، سکنا گزیدهند. ویدر در بازدید از این اردوگاه به لزوم حضور بیشتر زنان در نهادها و مشاغر دولتی تأکید کرد گترش در جمع گروهی از دختران سوری همچنین اظهار امیدواری کرد که برای برقراری صلح آنان بتواند در بهبود امور کشورشان مستمر سمر باشد آقای گترش پس از دیدار از اردوگاه زعتری در مصاحبهی بحران سوریه را فاجعه‌ای برای این کشور و مایه بیثباتی منطقه و جهان خواند جنگ داخلی سوریه حدود نیمی از جمعیت این کشور را از خانه و کاشانه خود آواره کرده است و یک خبر دیگر از آلمان آلمان کشورهای مبدع پناهجویان را به تحریم تهدید کرد آلمان فشار بر کشورهایی را که افزایش میدهد که درخواست پناهندگی شهروندانشان در آلمان رد شده اما حاضر به پسگیریان ها نیستند. وزیر کشور آلمان این کشورها را به کاهش کمک های عمرانی تهدید کرد. دولت آلمان قصد دارد شمار اخراج افرادی را افزایش دهد که درخواست پناهندگی را در این کشور رد شده است. اما این مسئله با مشکلی روبرو است. بسیاری از این کشورها با سرسختی از پذیرش شهروندان خود سر باز می‌زنند. اکتون توماس دمزیر وزیر کشور آلمان فشار بر این کشورها را افزایش داده است او در نشستی که روز 27 مارس با همتایان خود از کشورهای اتحادیه اروپا در بروکسل داشت گفت میتوان کمکهای عمرانی به این کشورها را کاهش داد و سفر رهبران آنها به اتحادیه اروپا را دشوار ساخت به گفته وی باید همه عرصه های سیاسی جهاد تشویق این کشورها برای بازپس پناهندگان را به کار گرفت او در این زمینه به اهرمهای کاهش کمک های عمرانی و دشوارسازی صدور روادید برای سفر به اتحادیه اروپا اشاره کرد. یک خبر از سوئد، قوانین سختگیرانه پروانه‌نگری در سوئد به تصویب رسید. سرانجام پارلمان سوئد قوانین سختگیرانه مهاجرتی را به تصویب رساند. بر طبق این قانون، سطح قوانین مهاجرتی سوئد به پایین ترین سطح اتحادیه اروپا رسد. صدها نفر بیرون از دربهای پارلمان سوئد با پلاکارد و بلنگو به تصویب قانون سخی پناهندگان معترض بودند در میان معترضان به قوانین جدید سخی پناهندگی چند نماینده از حزب چپ نیز حضور داشتند که با این پیشنهاد قانونی با این پیشنهاد قانونی رأی منفی داده بودند دانیل ریازت یکی از این نمایندگان بود و در گفتگو با بخش فارسی خبر سوئد گفت این قانون شرایط پناهندگی را بسیار بدتر میکند مخصوصا آنهایی که در انتظار پیوند خانوادگی هستند او خاطرنشان میکند که این قوانین بیشتر آسیب به کودکان میرساند و آخرین خبر باز از سوئد اخراج اجباری دهها متقاضی پناهندگی افغان از فرودگاه لنترز کتنبرگ روز سهشنبه شنبه 28 مارس دهها متقاضی پناهندگی تابعه افغانستان در سوئد که به درخواست پناهندگی خود پاسخ منفی گرفته بودند به اجبار و هم بمرای پلیس وارد هواپیمای چارتری که در این رابطه اجاره شده بود و به افغانستان اخراج شدند لباتون خندون دلاتون شاد تندروسیتون پایدار و سفرهاتون پرنوبات